گفتش فاصله کنندگان دو جورند یک قسمش در غیر ضرورت شعر پیدا میشه یک قسمش مخصوص به ضرورت شعری نصد اول گفت اگر فاصله کننده ما مفعول باشه یا ظرف باشه و برای مضاف شبه فعل هم باشه و مضاف شبه فعل رو جدا بکنه از منصوب خودش وفعول و زرف گفت این اجازه داره اشکال نداره در غیر ضرورت شهریه دیده شده حالا بیایید با این مثال هاش قراعت ابن آمرن مثل قراعت جناب آقای ابن لو قتل لو، اولاد دهم شرکا اهم قتلو اولاد دهم شرکا اهم قبل آیه داره کزالیکه کزالیکه زویی نه کزالیکه زویی نه لکسیرن منلمو شد کین قتلو نافايله زویی نه کزالیکه مفلومطلقه یعنی کزالیکه تزیین معنده این تزیین یه نه لکسیر من المشتکین زینت شده است برای کسیری لکسیر متعلقه به زی نه من المشتکین صفت کسیره برای کسیری از مشتکین زینت شده است چی؟ قتل و شرکا اهم اولاده هم شرکا فائلشه اولاده هم مفهولشه کشتن ادهی از اینها شریکانی از اینها اولاد خودشون یعنی فرزند کشی رو زینت می‌دونستان پیتوش به خودشون خوب بوده و زیبا. شاهد سر چیه؟ شاهد سر اینه که قتل مضاف ماشه به فعل است، مصدره. اضافه شده به شرکا فاعلش، مستر اضافه شده به فائلش مفعولش که منسوبه بین قتل و شرکا چیکار کرده؟ فاصله قتل و شرکا اهم اولادهم بوده ها در قراعت ایشون اینطور خونده شد. و قول هم این یه مثال و قول هم و قول بعضی از عرفا که اینطور گفتند ترک و باز مستره اونجا مفعول فاصله کرد اینجا چی فاصله میکنه زن زرف خودش میتونه زرف باشه میتونه جارو مجرور باشه شامل هر دو هست ترک و یومن نفسکه و هواها سعیون فی رداها ردا یعنی حلاک سعیون فی رداها یعنی سعیون فی حلاکها ترک مستره اضافه شده به مفعولش نفسک فایلش حضب شده مستر میتونه مفعولش رو داشته باشه فایلش چیه؟ حضب شده باشه مثل اتعامون فی یومن زی مسخبتن یتیمن یتیمن مفعوله و فایلش بگیر حضب شده ترک و نفسک یعنی ترک و که نفسکه ترک کردن تو نفس خودت رو یعنی ول کردن تو نفس خودت رو و هواهای اون نفس این واق میتونه واو عاطفه باشه و هواها رو عذ کنه به جای چی نفس کرد ترکو نفسک و هواها ترک کردن تو نفست رو و هواشو نفس تو هواشو با هم دیگه ول کردی هیچ کو میشه جلوشو نمیگیری خودسازی نمیکنی میتونه هم وابش وابه معییت باشه یعنی ترک و نفسی که ماه ها سعیون ترک و مبتده سعیون چیه خبرشه سعی است در حلاکتون میگه اگه تو نفس تو با هواه هواستش رو کنترل نکنی ویدشون کنی در روزی اونجا باید بگیم که کوشش کردی چی کار کنی خودت رو به حلاکت بمیرزی سعیون فیرده ها فیرده ها متعدد با سعیون اینجا شاید سر اینه و بین این دو که ترک مضاف شفه فعل هم هست چی فاصله کرده؟ یومن زر و قول هی تا حالا مثال برای جار و مجروری که فاصله کنه نزد چون زر مشابه جار و مجرور هست و قول هی تا حالا اون مثال برای مستر چون بالا گفت شفه فعلن. بالا نگاه کردید؟ گفت شفه فعل منظورش از شفه فعل چیه؟ گفت صفت و مضافن ای مسترون و؟ ای و یعنی مستر و اسم فایل یعنی مستر و اسم فایل یعنی مصدر و اسم فایل حالا میخواد اسم فایل مثال بذاریم یعنی الان در واقع باید بگیم اسم فایل از مفهول خودش جدا شده به وسیله مفهول دیگری یا به وسیله زرب مثلا گفتم زار با زیدن الان او قدن انصارب با زیدن الان او قدن بین زارب و زید الانه بیاد واسه بکنه بگم انه زارب و الانه بگید زهیده زهر فلا تحسبنن لا هست مخلف وعدهو و وعده دو مفغولیه دیگه رسولهی مفغول اولشه چیز مخلفت و مفغولیه رسولهی مفعول اولش مثل خود وعده دو مفعولیه مفعول, مفعول دومش که وعده است الان مخلف اضافه شده بوده به مفعول اولش رسولهی که مؤخر اومده و بین اسم فائل مخلف و رسولهی مفعول اولش چی فاصله کرده؟ وعده هو که مفعول سانی مفعول سانی مختلفه این نوع افعال مثل اعطی تو و کسو تو ا تو اینا دو مفعولیای اینطوری مفعول اول و چطور شناخته میشه اونی که گیرنده است میشه مفعول اول گرفته شده میشه مفعول سانی فلا تحسبن دلاله ناهیه است چون نون تاکید داره و طلبی باشه لا تحسبن ن لا ها. الله الله مفعول اولشه احوال قلوب دیگه زمیر انت فاعل الله مفعول اول مخلفه مفعوله سانی اضافه شده بوده به مفعول اولش و مفعول ثانی اومده بین او و مفعول اولش فاصله کرده یعنی گمان ما بر خدا را که نسبت به رسولان خودش کار کنه، خلف وعده کنه، بعدش و انجام نده نسبت به ای که به رسولانش ده. و قول ایش الله علیه و آله و وسلم و یکی هم حدیثی که ایشون نرم می‌کنه حل تارکو حل انتوم تارکو علیه صاحبی تو خیلی از کتب داره به جای علیه لی حالا یا لی یا علیه فرقی نمیکنه. الان تارکو چیه اسم فائله اضافه شده بوده به مفعولش صاحبی بعد بینه تارکو و صاحبی چی فاصله کرده؟ الیه که ظرف است. آ، اونجا ظرف مثال زد اونجا جارو مجلور فرقی هم نداره تارکو الیه صاحبی اینجا دیگه ظرفشون مثال نزد چون بخوا ظرف و جارو مجلور حکمشون یکیست هر حال استفقامی انتون مبتدا تارکو چیه؟ خبرشه اضافه شده به صاحبی مفعولش بینشون علایه چی که کرده؟ فاصله کرد یعنی آیا شما باقی میگذارید پیش من میفرستید پیش من صاحب مرا همراه مرا هل تارک و علیه صاحب و قول شاعره و یکم قول شاعر که اینجا ظرفم مثالش رو میاره و قول شاعره فرشمی به خیرن فرشمی به خیرن لا اکونن و مدهتی که ناهته یومن سخرتن و عزی فرشی فافای نتیجه راشه یری یعنی بر تیر پر که دیدی تیر راحت تر حرکت کند و دقیق تر بره جلو میگه رشی را شیریش و رش فیل چیه؟ همیشون مثل با عیبی و به رشنی به خیره. منظورش اینجا از رشنی میشه چیون موقع؟ اصله نی نه اصلاح کن من رو خیل خواهی کن برای من به خیر رشنی فیل و فائل و مفقود یا مفقود بشه زمین هم به خیلی متعلق بشه. میگه به من خیر و برکت بده من رو با خیر اصلاح کن لا اکونن و متحتی لا اکونن و متحتی کناه تیومن این لا و از لای نافیه گرفتن اگه لای نافیه بگیرن دخول نون تاکید میشه چی؟ شعص چون لای نافیه خبره دخول نون تاکید میشه شعص اگر لای نافیه بگیریم دیگه دخول نون تاکید مشکلی؟ ند مثل ات تقوفت لا تسیبنن لذین از علمو من کن خواستن ات تقوفت نتن لا این لا نه اگه لاشو نافیه بگیریم نون میشه چی؟ شاز اگه لاشو ناهیه بگیریم لا تسیبنن اون موقع جمله نه باید بشه چی؟ صفت جمله طلبی اگه بخواد صفت بشه باید تقدیر مادی قول کرد یعنی بگیم لا ات تقو فتنتا مقولتا مقولن فیها فتنهی که در موردش گفته شده لا توسیبن نزل از این از الامون بریم لا اکونن و مدحتی اکونن زمین هنه چیه اسمشه لا لای ناهیه این واب دیگه وابه چیه بگیم صد درصد نایید و نمیشه آتفه گره چون اگه بخواد عطف بشه به زمیر داخل اکونو عطف بر زمیر محفو متصل جایز نیست الا به عاده منفصل اسکن کن انت و زوجو کرد یا فاصل ما ید خلونها و من سلهم ما اش ولا آبا اولا سه تا مثال یکی هست این واقعه معییته مثل اون و هواها دو اقتمالی نیست اگر یه جای معییت رو آتفه هر دو باشه عاطفه گرفتن اولاست و متتی کناهت کناهت خبر است از برای لاعکونه نباید باشم من به همراه معد کردنم میگه من اومد هم که میام تو رو معد میکنم میگه من موقعی که تو رو معد کردم یه خیری به من برسون اینطور نباشه که من تو رو معد بکنم تو چیزی به من ندی و من مانند کسی باشم که کناهت سخرتن به یا یومن مثل کسی باشم که میخواد یک صخره را به تراشد و چیزی از او در بیاره اما پودکو دیلم نیورده بلکه چی آورده؟ از این جاروهای کوچی... اسیل جارویی که ادتارا باش مسک و مشک و اینجور چیزا را جمع میکرد که یک مثل قلمبوهای باریک که برد جمع کردن میگه یک کسی بیاد با این بخواد کوهی را ازش چیزی تتراشه میگه من اگه تو رو مد کنم و تو چیزی به من ندی من یه همچین تیپی به اتمام میبرم نباید من باشم و مد کردنم کناحته کناحت سخرته ناهت اضافه شده بوده به یا سخرته یومن اومده بینشون چیکار کرده فاصله کرده که ظرف است برای ناهت به اصیل بواسطه حالت مثل کتابتو به قلم متعلق است به ناهت می تراشد سخره‌ای رو اما با با اصیل با اون جاروی کوچک عبتاران یومن وسطشون فاصله کن درست؟ <تصفيق> <تصفيق> گفتش پس بنابراین اگر موزا شفه فعل باشد بینشون مفعول و زرق هم فاصله کند مشکلی ندارد مخصوص ضرورت شعر هم نیست چون بعضی جاها دیدید شعر مثال زد بعضی جاها غیر شعر مثال زد از آیات قرآن و کلام محصول میگه ولم یعب فصل و یمینه مطلقا فصل یمین یعنی چی؟ فاصله کردن قسم لم یعب عب شمرده نشده گفتن جایزه اشکال نداره دیگه حالا میخواد مضاف بگیر شپفل هم باشد یا مضاف شپفل نباشه حکر کساییو. کسایی کسایی حکایت کرده این مثال رو هازا قلا مو و لاه زیدن هازا مو و لاه چی؟ زیدن اینم مخصوصه به ضرورت شعریه بگید نیست وضع ترارن وجه دل فصلو به اجنبی یه منان مزاق خوب گوش کنید، اینجا یه مقدار دیر داره اجنبی گفتیم منظور یعنی چی؟ یعنی اونی که معمول مزاق نیست اینوش میگن چی؟ اجنبی اون مثال هایی که سابق خوندیم اجنبی بگید نه. نبود ضعف بود و مفقود هم که گفتیم اصلاً چون کسرت داره میتونه بین مضاف و مضاف الیه فاصله کنه حال چه فعل باشه چه نباشه میگه وضع تراراً در الفصل به اجنبی گه به جهت ضرورت شعریه پیدا شده این فاصله یعنی فاصله بین مضاف و مضاف و به اجنبی گید یعنی به سبب اجنبی من مزاف، اجنبی از مضاف نسبت به مضاف ما اجنبیست یعنی معمول او بگید نیست که مثل مثل این شاید خوب دقت کنید اینا ما این وجدنا للحوا من تبین ولا عدمنا قهر وجدن سبین سب یعنی عاشق، وجد یعنی عشق قهر یعنی قلبه نه که میدونید دیگه آه. عدم نا یعنی از دست دادیم لا عدم نا از دست ندادیم تب یعنی تبابت دوا علاج هوا اش میگه ما این این ما این که میاد بعد از ما چیه زائد است مفیده تحکیدش ما این وجدنا وجدناه فعل و نیافتیم قطعا ما لله هوا منطبه این وجدنا یعنی یقین نکردیم نیافتیم لله هوا منطبه این من چیه؟ زایده است شرایط داره دیگه مدخولش چیه؟ نکره است مفعوله آن در کلام منفیه شرطاش اینه که مدخولش نکره باشه در کلام منفی باشه بائل. یا مفعول یا مبتلا باشید وجدنا منتبه این تپ مفعول وجدناست لله هوا اگه وجد به معنای یافتن با مثل وجد تو زالتت تو کتاب عوامل خوندید یعنی با زاله خودم چیه برخورد کردم گم شدم رو پیدا کردم این یه مفخوضیه اگه وجده افعال غلوب باشه به معنی یقین کردن مثل انا وجدناه و سابرن نعمل عرب یعنی ما یقین کردیم عیوب سابره میشه للهوا مفعول سالیش یعنی متعلق به حامل ما قدر مفعول سالی اگر نه وجده به پیدا کردن باشه للهوا متعلق به وجده معنا اینطور میشه ما نیافتیم یعنی پیدا نکردیم برای عشق درمانی طبی. این به من پیدا کرد یعنی ما برخورد نکردیم برای عشق به درمانی به چیدیم اما اگه یقین کردن باشه یعنی ما یقین نکردیم قطعا تبی رو که باشد برای عشق و لا عدم نا واب لا زاید از تاکید نفیه ما رو میکنه عدم نا فیل و فایلت به جای وجد ناست. ولا عدمنا عدم نا. و از دست ندادیم. آه قهر وجدون وجد سبب و از دست ندادیم قهر و قلبه عشق را بر عاشق یعنی اینکه عشق بر عاشق سوار باشد و او را بر زمین بزنه و به دنبال خودش بکشه ما این از دست ندادیم یعنی هنوز عشق بر عاشق های ما چیه سوار است و ما دردی برای درمان عشق پیدا نکرده‌ایم این ولاعد امنا فیلو فایل قهره مفعول لاعد امناست قهر الان وجدون چیه؟ فایلشه یعنی غلبه کردن وجد اشک بر عاشق صب مغلوب کردن اشک عاشق را این صب مفعول قهر است حالا آیا وجد نسبت به قهر اجنبیست یا اجنبی نیست؟ قدعا اجنبی نیست شه اجنبی نیست و این مثال اینجا جاش و قطعا این مثال در اینجا حالت است. اما میگاه کنیم اینکه این اجنبی این نیست دلیل نمیشه که ضرورت شریه نباشه ها. این خودش جزء ضرورت شری است. یعنی ضرورت شری اجنبی یا نه و, و ندار سه تا، و به اضافه فاصله کردن فائل اون قبلا که گفتش مفعول باشه یا ظرف یعنی اگر فائل باشه چی؟ جز موارد ضرورته چرا؟ به دلیل اینکه که اگر مفعول باشه یا ظرف باشه فوزله است فاصله کردنش کلاشه حساب میشه اما اگر فائل باشه دیگه فوزله نیست لذا این شعر جزء موارد ضرورت بگید هست ضرورت فاصله کردن بین مضاف و مضاف و نلعب. اما مورد اجنبی نیست متوجه شدی یا نشدی؟ ما اصل حکم ضرورت رو روی رو این قبول داریم مثل دیگران اما اینکه این جزء موارد اجنبی باشد ثابت کردیم نیست به اجنبی من المضاف که قولهی یعنی این شعر جوز ضرورت است ولی آدم ناقهر وجدن وجدن صبین و قویی. انجبا عیمو والداهو بهی از نجلاه و فنی اما نجلا فنی اما نجلا انجبا والداهو بهی. از نجلا بود فنعم اما نجلا این انجبه فعله یعنی نجابت یافتند شریف گشتند کریم گشتند والداه والدا تسلیم باب تغلیبه والد و والدهش پدر و مادر او فاعل انجب است بهی به سبب این شخص ها یعنی پدر و مادر او به عزت نهایی رسیدن به کمال عزت رسیدن به خاطر وجود این برسند انجبه والده ها بگید که پدر و مادرش به حد نهایت شرف و کمال رسیدن ایامن ظرف است ایامن ظرف است برای انجبه ایامه ظرف است برای انجبه ایامه اضافه شده به از مثل هینه ازن یومه ازن ایام از الان بین مضاف و مزافنه لایه چی فاصله کرده والده ها به هی و نسبت به ایام بگیر اج این مخصوص ضرورت بگیر شعریه است ایام از از مزافنه لایه ایام نجلاهو فعل و فاعل و مفضوع نجلاهو یعنی ولداو نسلاهو در روزی که او رو به دنیا آوردند نجلا فنع ما ما نجلا فنع ما ما نجلا یعنی فنع ما ما نجلا هو یعنی به بح بحث چیز خوبی به دنیا آوردند این فا پای نتیجه است پای تفریه است. پس شاهد سر چی بود شاهد سره ایام بود که به از اضافه شده و بینشون والده بهی که اجنبیه نسبت به ایام فاصله کرد بعد فنعمه ما نجلا اینو دو جور ترکیب میکنن خوب یاد میگیرید مثل به اسما اشتره و تو قرآن داریم و مشابه این هست یعنی بعد از ما که بعد از نما و به اسه هست خیل بیاد جمله بیاد یک ترکیب اینه که نعمه فل مد ما ماي موصوله ماماي چی موسوله فاعلش نجلا بوده نجلاه هو سله ما و بگیر آید سله هم حاصله نعمه ما نجلاه هو بعد اگر سله و موصول مثل اینجا ما و سلهش اومد فایل نعمه واقع شد میگن این سله و موصول دیگه نیازه به مخصوص رو از بین بگید میبره دیگه نیازه به مخصوص نداره این مخصوص نمیخواد ترکیب دوبه که این دو قوی تره نعمه فعل. زمیر اسمش چی فایلش ما تمیز تمیزه برای اون زمیر مرجع اون زمیرم است نعمه شیئا نعم ما این جلاهو فعل و فاعل و مفعول صفت ماست اینجا صفت ما رو به نیاز از مخصوصه به مد بگیر یعنی در صورتی که ما رو ما چی بگیریم سله بگیریم سله به نیاز میکنه در صورتی که صفت بگیریم صفت به نیاز میکنه حالا ما ما موصوله باشد و فاعل یا ما صفت باشد برای ما تمیز باشد برای ضمیر مقدر یعنی ما موصوفه باشد یعنی یا ما موصول است یا موصوفه علای جای مخصوص رو چیکار میکنه فرم می‌کنه ما مثل همین آیه تو قرآن داریم ما بسم ما اش بهی عین همین درک میکنیم و قولی یه چند قوله این شاعر اونجا فاعل واسطه شده بود فاعل انجمه اینجا نگاه کنید تسقی امتیهان لدر ندل مسواکه ریغتها کما تضمن ما المذنت از وصف تقصی و مفقولیه قبلا نمداشتم آ یعقوب من وارد البیزه عليهمو برداو یوسف و غدير لهید سال سری دو مفقول تقصی مفقول اولش اونیه که قبول میکنه آب رو میگم سعی تو زیادان ما اند. پس علم میشه مفقول اول یعنی تقصی علم سواج نداری قطعا ندار یعنی نم خیزی طری ریقه آب دهان روزا آب دهان میگه سیراب میکند مسواک را آب دهان این خانم یعنی انقدر این آب تمیز است مسواک رو میشوید و سیراب میکنه دندان های نظیفو الان بین ندا که مفعول سانیست برای تسقی و بین ریغتها که مضاف و نلعهشه چی فاصله کرده؟ المسواکه نسبت به ندا اجنبیست چون ربطی به اون نداره. بلکه المسواکه مفعوله بگید اول تسقیست تسقی ندار المسواکه ریغتها مسواک بین ندا و ریختها که مفهومسانی است فصلش. امتیاهم چیه؟ امتیاهم دو تا ترکیب داری. یه ترکیب قویش. امتیاهم یعنی استیاکن، استاکه یا استاکو یعنی مسواک شد. استیاک مسواک شد. امتیاهم یعنی مسواک شد. خب امتیاهم دو تا ترکیب داره یکی امتیاهم به معنای ممتعاتن، ممتعاتن یعنی چی؟ یعنی در حالی که داره مسواک میزنه یعنی سیراغ میکند مسواک را در حالی که داره مسواک میزنه آب دهانش حال است از برای تسخی مسترم میتونه حال بیاد تحویل به اسم فائلم ترکیب دومش اینه که ظرف باشد برای تسخی به اعتبار مضاف مقدر اصلش بوده تسخی وقت امتیاهن تسقی وقت امتیاهن یعنی چی؟ یعنی سیراب میکنه به هنگامی که داره نصفاک میزنه در هنگام نصفاک زدن مضاف اتراده مضاف اتراده جاش نشسته مضاف اتراده از مضاف کسب چی چی کرده؟ کسب زمانیت کرده شده مفهولون فیل کما منه این تزمنه کما منه ما المزنته ار رسف مزنه یعنی از صحابته همان همانطور که دربر میگیرد آب عبر را یعنی باران رو ار رسف این تخت سنگ های مرمری صافی رو میگن که کنار هم باشه میگه چطور تخت سنگ های صاف مرمری کنار هم آب رو در روی رو شفاف میگن میدارن میگه دندان های این هم مثل ها؟ همون تمام تزم منا ما آل این کاف حرف تشبیه ما مای مستری است ما براش تو به مستر مياد. تزمنه فعل ما آل ما آل مزنّت مفعول شد علاّسافو فاعيل شد. بيشتر كه تزم ما آل این کتزمون خبر است از برای یک مبتدای محضور یعنی هازا این مسواک زدن و آب روی دندان های این خانم هازا کتزمونه ها مشخصه یعنی این مسواک که روی دندان های او میچرخه و آب روی دندان ها شفاف جمع شده مثل این میمونه که آب باران که پاکیزه ترین آب هست و روی تخت سنگ های صافت و مرمرین چی شده باشه که در کنار هم چیده شدن جمع شده باشه شاهد سر چی بود که علم اسواکه بین ندا و ریغتها و قوله هی یکی هم قوله هی شاید میگاه کنیم کما خود تل کتابو به کف یومن یهودی ین یغارب او یوزین میگه آثاری از این محبوبه باقی مونده بعد از این که کوچ کرده این آثار آدم از بالا نگاه میکنه میبینه مثلا یه خط کشیده شده بعد مثلا یه خط دیگه با یه فاصله کم بعد مثلا یه خط دیگه با یه فاصله بیشتر بعد مثلا دو سه تا نقطه دیده میشه مثلا نقطه ها جایی کشونه جای مشکه ها بشونه. اون خط ها مثلا خط که کناره مثلا چادرهاشون زدن واقعی که اینها رو نزد کردن میگه اینها خیلی وقت از اینجا رفتن وقتی نگاه میکنی خط و خطوط و نقش و نگارهایی که روی زمینه مثل چی میمونه؟ مثل یه نوشته‌ای میمونه که یه یهودی یه نوشته باشه چرا گفته یهودی یه چون یه ها اون زمان اهل کتابت بودن گفته مثل یک صفحه‌ای میمونه که یه یهودی نوشته باشه و این صفحه وقتی نگاه میکنی بعضی خطاب به شده نزدیک شده بعضی‌ها از همدیگه دوره این صفحه‌ای رو که شما روی زمین می‌بینید از آثار باقی مانده از محبوبه مثل همین است ها یعنی هاذهل آثار کرد این آثار باقی مانده خط و خطوط روی زمین هاذه نقوش کرد این نقشه هایی که روی زمینه کرد کما این مامای مصطری است یعنی که خطه مثل نوشته شدن کتابی است خودتن کتابو مثل اینکه نوشته شده باشد کتابی یعنی مکتوبی اینجا کتاب به معنی مکتوبه یعنی صفحه‌ای به کف یهودیه به کفه متعلق است به خودتن کف اضافه شده به یهودی بین این دوتا چی فاصله کرده یومن که ظرف است برای خودتن ربطی به کف بگیر نداره اجنبی ارسال یغار و اویزیل صفت یهودی است یعنی یغار بول خطه او یوزیل الخطه یوزیلا یعنی ازاله میکنه نزدیک میکنه یا ازاله میکنه یعنی نزدیکی رو از بین میبره یا این خطا رو به هم دیگه نزدیک کرده یا این خطا رو از هم دیگه دور کرده میگه از بالا نگاه میکنی به این آسام مثل همین صفه است یغاره به او یوزیل صفت یغبی است جمله بعد از نکره است کما خود کتاب یعنی ک خط کتاب مانند نوشته شدن کتاب تعوید به مثلا یعنی حاضح که کختل کتاب این نقوش مثل نوشته شدن یک کتاب هست او به نعتن یا بیاد بین اینها چی فاصله کنه بگید نعت نعت فاصله کنه او به نعتن نهو این شرمال معاویه است و علیه الهاویه ها؟ بدونید که سه نفر اومدن توطئه کردند، تو کتاب داستان راستان منحوم متحریح هم این رو نقل کرده سه تا از خوارش که باقی مانده بودند، اینها اومدن توطئه کردن گفتن سه نفر رو ما اگر بکشیم مسلمین جمع میشن و برای خودشون کاری رو شروع میکنن یکی آقا امیر رو و یکی امرو ابن العاص رو و یکی هم معاویت معاویت ابن عمیسو پیان بعد اتفاقاً قرار هم گذاشتن، پیمان هم بستن در مکه که در لیلت القدر این کار رو بکنه اون دوتا رفتند سراغ امرو بن العاص و معاویه معاویه ضربه خورد ولی نمان زربهی به کشال خورد ولی نمان امرو بن العاص هم اون روز کسی دیگر رو پرستاد جای خودش و اون شخص کشته شد اما آقا امیر به درجه شهادت رسید بعد معاویه این شعر رو گفت میگه نجوتو من نجات پیدا کردم نجوتو و قد بلل مرادی یو سیفهو و حالان که مرادی یعنی ابن ملجمه مرادی بله یعنی چی خیز کرد و حالا که خیز کرد ابن ملجم مرادی شمجیر خودش رو خیز کرد از کی؟ من ابن عبی طالب از پسر عبی طالب عبی طالب چه صفتی داشت؟ شیخ الاباته اباته جمع بدها یعنی صحرا. شیخ عواته بود یعنی شیخ همه سهراب های عربی شیخ جزیرات العرب بزرگ جزیلتون عرب الان شیخ شیخه لعباته صفت کیه؟ عبی طالب اومده بین عبی و طالب چی کرده؟ درسته که عبی طالب ابو طالب کنیه است و کلش اسم است کلش اسم علمه ولی صفتش از کی تبعیت میکنه؟ از مزاق اعراب بر کی ظاهر میشه؟ بر مزاق لذا شیخ الان اومده نعت واقع شده برای عبی در لفظه اگرچه در معنا و واقع نعت است برای کل عبی طالب ابوطالب طالب کلش مثل مثلا زیده اون عبیش مثل زا میمونه طالبش مثل یهودال میمونه روی همدیگه عبو طالب یک شخصه اما در ایراد صفت رو برای کدوم میارن؟ برای جزه اولش میارن عبی طالب من ابن عبی طالبین شیخ اباطه نجوت فعل و فاعل و قد بلن و و و با دیگه المرادي فاعل بلند سی و هو مفعول شه منم متعلق به بلندس من ابي طالب شيخ اباطه بین اینها چگاه کرده فاصله به نعت نه نظر میاد که آخه یه مقدار همچین شاید امر بنو این تحریک رو نسبت به خوارج چیه کرده باشه که خودش کسی دیگر رفته و کشته شده ولی اون دو نفر یکی به شهادت رسید یکی زنده من دوته هست و هم خورده حالا شاید اگر انسان دهقیق بکنه در تاریخ و آثار خوارج رو کنه ارتباطات پنهانیشون رو با امرو بلال آس در مصر پیدا کنه شاید به این مطلب برسید او نداء این او ندا ندا بوده ممدود به خاطر ضرورت شعر تبدیل به مقصود شده او ندا. مستلالهو فی شرح کافیته به قوله ببینید تا اینجا مثالایی که میزد نگفتش مثالهای مصنفه این یه مثالی که میرسه میگه چی؟ مستلالهو مثال زده است برای این مورد در کتاب شرح کافیه به قول اشاره. یعنی این مثاله یه مقدار چی, چی داره؟ اشکال داره که اینطور داره میگه چه برزون عبا اصامن زیدن همارون دو قبل لجام میگه چه انه برزون بعضی ها اون گله موقعی که حرکت میکنه، گله حیوان، یه دونه حیوان هستش که از همه درشته رو سردسته، اون جلو میره بقیه هم همه دنبالشون. همه حیوانات اینو دارن گلهای که حرکت میکنه. یکیشون شون اونو اون میگه برزاون. بعضی‌هام برزاون رو که جمعش برازینه معنا کردن به اسب غیر خوب. آه؟ حالا الا حال میگه اسب غیر یا اسب پیشروی زی اون برزون اضافه شده به کی؟ به زی عصف پیش زی یا غیر غیرحصیل زی همارون برزونه اسم کن نست اضافه شده به زی همارون چیه؟ میگه آدم وقتی نگاه میکنه این عصف پیش روهش یا عصف غیرحصیلش مثل چی میمونه؟ خر میمونه اینه خریست خریه که دو قبل لجام لجام به دهانش کوبیده باشن لجام رو به اسب میزنن می آدم از نگاه که میکنه احساس میکنه این خره که بگه یک لجامی هم به دهانش گویدن از برو از درجه اعتبار و ارزش چیه انداخته دو قبل زمین نایفایلش که بهمار به میخوره لجام به لجام متعلق به دوقه است این جمله صفت عمار است جمله بعد از نکره میشه چی صفت دو قبل لجا این ابواسامن چیه میگه این ابواسامن منادا بوده یعنی یا ابواسامن و بین مضا برزون و مضافه الی کرده فاصله که. او ندا برسه بین اینها فاصله جا این شارژ میشه ها میگیم اینو گفت شعر کافیه شما اشکال داری بهش میگه بله و یوم کنا انیکونه لغت اجرای ابن بن علق علاکله حال میگه این این احتمال درش هست و اذا جهل احتمال بطلل استدلال اگر احتمال ما بیاریم دیگه استدلال نمیشه به این شرکت احتمال داره که این عبایسام چی باشه مضاپنه لیه برزون باشه و زید عتب بیان یا بدلش باشه میگون خب بچه نگفته عبیسام میگه مگه نخوندی آ؟ که وفی ابن و تالیهیه یند رو و قصرها من نقصه نه اشهروا رو اباها و ابا اباها عبا قد بلغوا في المجد می گفت در عب لغتی است که چیکار میکنه در همه حالات به شکل علف میاد و اعرابش میشه تقدیمی میگه احتمال داره این از اون قسمشه و اذا جاء احتمال بطلن احتمال ممکنو ان يكونا یعنی لحجه ای که لحجه ای که اجرا میکنه عب رو به الف در همه حالات ظرف النصبن و زید میگیم چیه میگه و زیدن بدلون منو زید بدل باشه از عبایسان او عطب و بیان یا عطب بیان باشه میگه این حرف رو زده میگه آدم گلوهی زده احتمال قوییست قال ابو ابنه این آقای ابن شام کفته و استدلال به این شهر یه مقدار شده چی؟ زیده یعنی اگر این رو به عنوان شاهد بیاریم پذیرفتنش میشه چی؟ مشکل می خواهیم استدلال کنیم دیگه بینی تتمتون تتمه. می میگه فواصل بین مزاخ و مزاخن علی رو چیه؟ شما اهم از اونایی که در اختیار می یا اهم از اونایی که در ازترار می آمد یکی رو جا انداخته ایشون ذکر میگه کنه می گه تتمتون منل فواصل اما یکی دیگر از فواصل چیه؟ ام ماست یعنی غیر از حالا میگیم این جزء قسم اول است یا جزء قسمه بگید دوم جزء اوناییه که در ضرورت میاد قسم دوم یا اونایی که در غیر ضرورت میاد ظاهرش اینه که در تطمئه وقتی ذکر میکنه اینه که جزء قسمی چی باشه ضرورتی ها باشه ها چون تطمئه این بحث داره میگه من الفواصله ام ما قال هو فی کافیه اینو خود مصنف گفته در کتاب کافیه بعد گفته ها مختفران بعد گفته و فاصله شدن به این چیه؟ مختفر است این ها مختفران میفهمونه که چی؟ نظرش اینه که در غیره از ضرورت شعریه هم جایزه و اللہ معنا نداره بگه من الفواصل امما از فواصل امماست بعد بگه ها مختفران خب وقتی فواصل باشه که فصل به اون چیه؟ اما ها مختفران به نصر منظورش اینه که فصل به اون بخشیده شده اجازه داده شده در چی؟ در نصر گفتن اشکالی؟ نداری یعنی مثل قسم اول است میگیم مثال بزنم میگه کقوله مثل قول این شاره هما خود تتا اما اصارن و منته و اما دمن و الموتو بالهره اجدن میگه هما خود تتا خودت یعنی راه صبی طریقه میگه وما خود این دو تا راهه یعنی ما دو تا راه علوم داریم وما خود اما اسار و مننته الان دنشه این باب منبوم باب حالیگه میتونه باشه باب آتفرم میتونه باشه باب سیناسیگه هم از با گرفتن با هر کمون از خب که اگر ما باب داشته باشیم اول در باب چیه احتمال اول باب خاص بعد حالیگه بعد سیناسیگه خب اینجا تو سمیل ما آهارو مجا جلال باب گفتش غالب به این طرف من رو خودش گفته در کتاب چی؟ بعد اون برس ها مختلفه این اصلا یه اشکاری لاشته که این رو باز کارش کرده نسبتش داده به کتابه کافیهش نسبتش یه دو خطیه از کتاب روی افنه من برای میگم ای کاش این هم مثل کارو بالایی امکنان از افنه شام بالا کن بالاست می نمیدیم کار افنه سربا دل خامسه قاره نوشان سربا از نوشان دل دل از در از کتاب محریم چی کبسته؟ از تثمیت و جمع ام نا. نا. از و جمع الان خودت شده همچونی یه زمانی لفت ضرورتی برای آتره ضرورت شعریه لفت ضرورتی فمست آن روزه همین به اینو چکا کرده چرا همچون بوده بوده این کن روما اما اصلاح وقت و منتون و اما درون اونها رو مرگو بدل بوده از درای خوضتان بدل تفسیری تقریبی تفسیری نشوند یعنی به مرگو اگر رو خونیم میگیم خوضتان بوده اونش تو ما زیاده در اون از شعریه شده هر شده اگر اصحارون و مندنون و منزده در حاضر سون مخاله یعنی, یعنی اصحارون و مندنون و این بانگمون دو مخاله بمن رواه و درفت احساس بمن رواه و درفت احساس و هر کسی که اینو رفت کرد نسال روایت کرده به لب و این امتوان و من و اما من, من, من, من, من خفزه و اما من خفزه جرده فضل اضافه جردش به چیه؟ به اضافه که خودت ها اضافه شده بوده به چی؟ به اصحاره و که اینجا نشبور به اصحاره ما فضل اضافه و خود درد در این هم متضایه بین و قاصله شده بینه چی؟ مضاقه مضاقه نه خودت ها و اصحاره به چی شده؟ به همین چیزی که آقای مالداشرال مستانده به ایمان این دکتر بلم ینفک بیتو بلم ینفک کرده بیتو مرد ضرورت بلم ینفک کرده به در زمرت از زمرت شریعت یعنی اگر شما اصحار و زمن ضرورت شعریت ضرورت شعریت چیه؟ چون خودتان بوده نورش؟ افتاده. اگه احسان و منتر نفانی پادم ضرورت شعریت چرا؟ به دلیل اینکه که فواسده کرده اما اما جوز فواسده هاییی که در ضرورت شعریت امنشان نظرش اینه که این جوزه موارد ضرورت شعریت اگر فواسده احسا باشه سریعی و بعد هم میگه این احتمال داره که احسار و ممنتون باشه اون موقع اگر احسار و ممنتون بخانیم دیگه اضافه نشته احتمال دیگه ایست و اون بوقع مناطقه و از اینجا از چه دیگر در دو آنجا